هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه فضلش بدانند پایه جهلش معلوم کند ندهد مرد هوشمند جواب مگر آنکه از او سوال کنند گرچه برحق حق بود مزاج سخن حمل دعویش بر محال کنند